اینکه خداوند فقط مستحق پرستش است و گواه میدیم بلی اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلام از سوی خداوند به سوی ماها بوده از طرف خداوند به سوی ماها بوده تا اینکه ما خداوند را بپرستیم کتابی اوورد کتاب آسمانی از طرف پروردگار و اون هم قرآن تا اینکه ما هدایت بشیم در این قرآنش یاد کرد برای ما از تا اینکه قلبمون شک و تردیدی نسبت به پروردگارمون در قلبمون شک و تردیدی نسبت به پروردگارمون ایجاد نشه بهمون گو اون پروردگاری که از انتون خواسته او را بپرسید بدانید که اون پروردگارتون الرحمن و رحیم هست غیر از اینکه الرحمن و رحیم هست خداوند داناس نسبت به ماها داناست اون کسی که ماها را خلقت کرد میدانست چطور انسان را خلقت بکنه که اون انسان نیازمند کسی جز او نباشه در درون او قلبی قرار داد تا اون قلبش بتونه خون را در رگهای بدنش جاری بسازه خداوند آناس و کارش هم از داناییش سرزده کاری که هیچ نقصی در اون نیست خداوندی که از قبل میدونسته که چه، عضوی و چه بدنی را خلقت بکنه که اون بدن دیگه نیازمند کسی نباشه. بینیاز باشه. اون بدن کار خودش رو خودش انجام بده بدون این کسی که راهنماییش بکنه، معده خودش کار خودش رو انجام میده و قلب کار خودش رو انجام میده. این هدایت خداونده. این لطف خداونده. این رحمت خداونده که همه جرا فرا گرفته. اون خداوندی که از قبل دونسته و با داناییش ما کرده، از آینده ما هم با خبره. خداوند علیم نسبت به آن چیزی که میشود خداوند از قبل بهمون خبر داد و گفته که دجال میاد، یاجوج ماجوج میاد و خیلی چیزها و قیامت برپا میشه، جهنم برپا میشه. بله خداوند از علم آیده به همون خبر داده و اون علمی که بهمون همون گفته حقه و بدون شک و تردیدی ما کلام خداوند باری تعالی را پذیرفتیم و میگوییم چون کلام او هست کلامش حقه و ایمان داریم و یقین داریم نسبت به اون چیزی که به همون گفته ما اگر به سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نگاه بکنیم نگرشی داشته باشیم به زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم میدونیم که چگونه خداوند با پیانبرش بود رسول الله صلی الله علیه دعوتش که آغاز کردن چقدر مشرکین سعی کردن او را آزار را بکنند بکنن او را حفظ بکنن نگه بدن در شر ابی طالب چند سال گذاشتنش اونجا بدون غذا و آب که خداوند آب و غذاش رسون نگذاش که در این امتحان بندش بدون آب و غذا بدون روزی باشه روزی پیغمبر خودش و اصحابی که اومدن کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم ایساده بودن، رزق روزیشون درسته که با سختی بود در امتحان بود، ولی که رزق روزی اونها را امرسون. بله پیغمبر خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم استقامت کرد در مقابل این امتحان خداوند چون میدونست این امتحان ها اثبات بندگی هست. تا خداوند امتحان بکنه که آیا این بنده واقعا سپاسگزار خواهد شد یا نه. بعد از اون سالها که گ تصمیم گرفتن مشرکی این که رسول الله رسول الله علیه وسلم به قد برسونن او را بکشن ولیکن خداوند دانا بود خداوند از غیب با خبر بود میدونست که اونها اینچنین نقشه شعمی دارن این چنین نقشه پلیدی داره در مقابل پیغمبر خدا میخواهن او را بکشن همونطور که از قبل اصحاب رسول الله را میکشتن یاسر سر را کشتن که سبب شد مسلمانان از صحابه رسول الله صلی الله علیه و به حبشه هجرت کنندن حال دیگر نوبت نوبت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید صحابه فرار کردند و خداوندم بهشون اطلاع داد که میخواهند شما را بکشن اذیت بکنند پس شما برید هجرت بکنید به جای دیگر پناهگاهی هم بهشون گذاشت اونم حبشه پادشاهی نیک که کسی را ظلم نمی‌کرد اونم نجاشی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت برید اونجا که پادشاهی هست که شما را ضر نخواهد کرد و نمیکند و همین طور هم شد بله مشرکی این تلاش داشتن که رسول الله صلی الله علیه و به قتل ولی که خداوند که علام و غیوب هست از آینده با خبر بود در رسول الله صلی الله علیه و سلام خبر میدهد که مشرکین تلاش دارن که تو را ترا تو را به قتل برسانند. ای محمد، بلند بشو با رفیقت ابوبکر صدیق بلند شو و باری با خودت بردار بدون اینکه مشرکین بدانن بلند بشو که آنها می‌خواهند تو را به قتل برسانند. تصمیم گرفتن که تو را به قتل برسانند. بلند شو از آنجا هجرت کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند میشه، توشاشو کوله‌بارش برن میکنه، میره در غار پناهنده میشه تا اینکه مشرکین پینه برن که رسول الله صلی الله علیه و سلم کجا هست و چه مصیری رفته بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار که می نشینه اونجا مشرکین بر سر غار هم میایان اونجا هست که خداوند به ابوبکر صدیق میگوید نتاست که خدا با ماست بل خدا با ماست خدا با قدرتش با ماست با نصرتش با ماست با علمش با ماست خداوند داریم از اون بالای آسمون ها که می بیند و می شنود از حال ما باخبر است بله از بالای آسمون ها خداوند ما را می بیند همون که به موسا و هارون از قبلم چنین گفت که برید پیش فرعون فقول له قولا لیننا بانی کی با صحبت بکنید بعد خداوند به اونها گفت انی معکما اسمع و ارا من با شما هستم یعنی من پناه شما هستم شما را پناه خواهم داد میشندم و میبینم پس همراهی خداوند با دیدنشه با شنیدنشه نه اینکه با ذات خودش اینجا باشه چون خداوند بالای عرشه مخلوقات تحمل همانطور که حدیثی رو گفتیم خدا رسولات رسول الله صلی الله علیه و وقتی که معراج رفتند، صحابه پرسیدند: آیا خدا را دیدی؟ فرمودند: حجاب و نور، لو اشرقت صبحات وجهه ای مده مد بصره من خلقه، حجابی از نور بود. اگر از یک پرتو نور صورت خداوند از اونجا عبور بکنه، از وجه خداوند عبور بکنه، تمامی مخلوقات تا جایی که چشم الله کار میکنه آتش خواهند گرفت. مخلوقات توان و تحمل یک نور خداوند را ندارند. پس خداوند بالای عرشه خداوند از اونجا مخلوقات را میبیند و آنجا از اونجا صدای آنها را می‌شنود و به داد آنها میرسد. بله خداوند میدانست است که مشرکین چنین نقشه پلیلی دارند و اومد پیامبر خودش را نجات داد. بدانید ای بندگان که خداوند شما را نجات میده. خداوند دست شما را میگیرد در سختی‌ها. خداوند پناهگاه شما هست. به کسی جز خداوند پناه نبرید. هیچ کسی مثل خدا رحم و لطف به نسبت شما نداره. خداوند ملتیف و رحمانه نسبت ماها لطف خدا را فراموش نکنید در حق خودتون از همون بالا ما را ببیند و دعای ما را استجابت می‌کند. خداوند متعال چنین میگوید الم تر ان الله یعلم ما في السماوات وَمَا فِي في الارض آیا نمی که خداوند میداند از آن چیزی که در آسمانها و زمینه ما یکون من نجوه سلاثت الا و هو رابعهم سنفر نیستن که با هم پنهانی صحبت بکنن مگر اینکه این که خداوند چارمیشون هست هو سادسهم؟ په نفر نیست مگر ششومیشون خدا باشه ولا ادن من ذلک ولا اکثر نه کمتر از این سنفر و نه بیشتر الا هو معهم مگر این که با اونها باشه با علمش خدا با می داند نه اینکه میداند از اون چیزی که از اعمال ما رخ میده از اون حرفی که می زنیم حتی از اون چیزی که در دل ما هم می خداوند خدا با می داند سم یونبیع هم به ما عملو یوم به بندگان میگوید. از آن چیزی که عمل کردن، ان الله علیم، خداوند نسبت به هر چیزی داناست. بله، خداوند می داند از آن اعمالی که ما انجام می دیم و از آن چیزهایی که در قلب خودمون قصش می کنیم، نیتش می کنیم، خداوند با خبره. و اوجهرو به، اینه علیم مذات السدور. می پنهان نگه بدارید؟ چی می خواهید آشکارش بکنید؟ خداوند که می داند که شما، چه می دارید؟ چه قصدی دارید چه میخواد پنهانش بکنید و آشکارش بکنید؟ خداوند میداند بله خداوند داناست نسبت به اون چیزی که رخ میدهد حال خداوندی که دانا هست و میداند از آینده آیا میشود بنده ای رو بیاره به کسی دیگر؟ میشود اجازهش رو داریم که ما رو بیاریم به مرده ای و بگیم ای مرده به دادمون برست آیا اون مرده از قلب ما باخبره یا از آینده ما باخبره که اگر مثلا به من از خدا ماشینی خواستم آیا اون مرده میدونه که به درد من میخوره یا نه یا اگر فرزندی بهمون به داد خیلی از انسان ها هستن که وقتی که خداوند دوچار مصیبتی به اونها میکنه خداوند اون بنده را امتحان میکنه اون بنده میاد به خداوند نسبت ظلم میده میاد به خداوند نکوهش میکنه سرزنشش میکنه چرا فرزندم یا پدرم یا مادرم یا شوهرم را از من گرفتی خداوند از آینده با خبره برای اینکه ما درک بکنیم برای اینکه ما بفهمیم شعور دینی داشته باشیم خداوند اومد قصه ای از موسا و خیز را برای ما در قرآن نقش کرد درسوری الکهفی که هر جمعه ما می این قصه و تا اینکه ما به علم خدا پی ببریم و خوشبین باشیم نسبت به اون قضا و قدر الهی نسبت به اون چیزی که میشه بعد خداوند گذاشته که بشه خداوند از قصه موسی چی گفت خداوند اومد موسی علیه السلام را انت امتحان کرد گفت که موسی اینجوری ادعا داشت که کسی بهتر از من نمیدانه خداوند برای اینکه اثبات بکنه داناتر از او هم هست او را به سمت خز هدایت میکنه. میگه گوید که خدا من به موسی برو به طرف خز. خز وقتی که موسی باش همراهی میکنه میاد به موسی می گوید که تو بر من اعتراض نکن اگر کاری انجام دادم چیزی نگو. خز می آید سوار کشتی می شود کشتی را سوراخ میکنه کشتی غرق بشه. موسی اعتراض می کنه. می نگفتم بهت که اعتراض نکن. سپس کمی دیگر، دیواری میبیند خراب میشود اون دیوار رو درست میکنه بازم موسا میگه این این قومی که ما اینجا دیدیم مستحق این نبود تو شما این دیوار رو درست بکنی باز خضر هم میگه می که تو تحمل ندی، صبر کن ای را میبیند بچه را می سر میزند بازم موسا اعتراض میکنه این بنده خدا طفل معصوم را چرا کشتی خداوند با این قصه میخواهد به ما دلداری بده میخواهد از رحم خودش از لطف خودش در حق ماها به هم بگه ای بنده باش اش به بد به خدا نگاه نکن اگر فرزنده تو گرفت خضر آمد موسی را توجیه کرد به موسا چی گفت گفت ای موسا اگر من اون کشتی را کردم سوراخ کردم به خاطر این بود که این کشتی مال چند فقیری بیش نبود پادشاهی بود که که به کمین این کشتی نشسته بود که این کشتی را از دست این فقرا را بگیرند خداوند رحمی داشت در حق اون فقرا ای در این کشتی گفت من ایجاد بکنم تا اینکه اون پادشاه این کشتی را به سلطه خودش در میاره این فقرا محروم نشن از رزق و روزی که برن با اون کشتی رزق و روزی خودشون به دست بیارن بله اما اون دیواری که خز گفت من خراب کردم به خاطر این بود که پدر و مادر صالحی بودن که مالی را گذاشته بودن در زیر اون دیوار تا اینکه فرزندان این اشخاص وقتی که میآیند بی پول و بی نباشند این دیوار اگر خراب میشد اون مالی که گذاشته بودند اون پدر و مادر کشف میشد و مردم بر برمیداشتن و اون فرزندا محروم میشدن پس انسان نباید بدبین باشه نسبت به با خدا باید خوشبین باشیم. نسبت به با اون چیزی که خدا بهمون گفته اگر خدا گفته بهمون که ما نیکی بکنیم در حق همسایه یا در حق پدر و مادر این به خاطر لطفی هست که در حق ماها داشته چون ما هم فردا فرزندار میشیم فرزندان ما هم فرزندان ما هم فردا با دست ما رو بگیرن عصای دست ما هم باشند تا اینکه بتونیم در کنار هم دیگه زندگی بکنیم چه زندگی هست اون زندگی حیوانی که مشرکین دارن نه عمو دارن نه دایی دارن نه خاله و نه عمه دارن این زندگی چه ب... چه زندگی هست شما در نظر بگیرید اون فرزندی که زنازاده هست اون فرزندی که پدر و مادر رهاش میکنن کنار زباله ای یا کنار زایشگاهی خب این فرزند چگونه بزرگ میشه اون بی سرپرست اون بینوا چگونه بزرگ میشه میگم نیاز به لطف نداره نیاز به رحمت نداره خدا دونسته علیم بوده از آینده که گفته ای بندگان ازدواج بکنید دنبال زنا نرید چون اگر زنا کردید دچار چی میشید فرزندت چطور روانی میشه؟ فرزندتون بی محبت و بی مهر بار میاد. فرزندتون انتقام گیر میشه. اون فرزندی که پدر و مادر بالا سرش نیست، میره دوباره زنا میکنه. این دختر و اون دختر رو اذیت میکنه. مال مردم را برمیداره داره، دزدی میکنه. بله، دیگه کسی نیست بهش بگه این کارو بکن، نکن. بد تربیت میشه. به خاطر اینکه تربیت خوب بشه، فرزند پدر و مادر رو ازدواج خدا گذاشته. این علم خداست. این رحمت خداست اگر خداوند گفته ازش اطاعت بکنیم، پرستشش بکنیم به خاطر اینه که ما به راه راست هدایت بشیم و در زندگیمون دچار مشکل نشیم، همیشه با خوشبین باشیم به قضای الهی. همونطور هم اون بچه‌ای که خیز او را میکشه به دستور خداوند و ما فعلت عن امری خدا خیز میگوید من بخ... از طرف خودم این کارو نکردم بلکه وحی خدا بود، خدا از من خواسته بود. و موسا هم اونجا تسلیم شد گفت وقتی که اون بچه را کشت گفت که این بچه اگر بزرگ می‌شد این پدر و مادری که صالح بودن مؤمن بودن گمراه می‌شد با این بچه بد این بچه بد اونها رو گمراه می کرد اونها رو اذیت خدا من به خاطر لطفی که در حق پدر و مادر داشت اون بچه را از دنیا برد بله ما باید خوشبین باشیم نسبت به آینده نسبت به شرع خدا دین خدا اون چیزی که ازمون خاصه اون خواهر مؤمن نباید بگوید که چرا خدا من به من گفته مثلا ابروم بر ندارم؟ چرا به من گفته که من بی حجاب نباشم؟ نباید تود خودش احساس سنگینی بکنه. همون طور که خداوند میگوید فلا و ربک لا یؤمنون حتی يحکیموک في شجر بینهم. ایمان ندارن تا اینکه تورا حاکم بکنن یا از صبح فزیرت از داعت بکنن ای رسول خدا، چون رسول خداست، پیام صرف خدا اوورده فلا و ربک لا یؤمنون سپس در نفس خودشون احساس حرج نکنن دلکنگی نکنن خوشبین باشن نسبت به خدا و و, و کاملا تسلیم امر خدا باشن بله این علمها که خداوند گذاشته و این مثالها که در قرآن خداوند بهمون زده زده خاطر اینی که ما نسبت به دینش و نسبت به خودش خوشبین باشیم و هیچ وقت فکر نکنیم که تکلیف و مشقی هست که ما نمیتونیم ادا بکنیم اون نماز صحبی که صبحی که خداوند صبحی که خداوند گذاشته که ما بیدار بشیم و بریم به مسجد در حقای سرد و گرد خداوند لطف ما را خواسته خداوند صحت سلامتی بدن ما را خواسته خداوند خواسته که ما با اون بندگیمون سبب بشه که از فحشا و منکر دور بشیم همونطور که خداوند میفرما ان الصلاه تنها عن و المنکر نماز انسان را از فحشا و منکر دور میکنه بله خداوند پای بندی رو میخواد التظام رو میخواد. خداوند انسانیت را ازمون میخواد. اگر ما بنده خدا نباشیم اگر ما بندگی را به خداوند ثابت نکنیم دیگه بنده خودمون میشیم بنده ابلیس و هوای نفسمون میشیم بنده شهوت میشیم. نه بنده خدا. دیگه اون وقت هست که هوای نفسمون اگر بهمون به گفت و کن می زنا بکن میکنیم. بکن میکنیم. ابلیس اگر اومد ورسمون کرد که ظلم بکنیم میکنیم چون دیگه بندگی نیست. چون دیگه انسان لذت ده برده از بندگیش دیگه اونجا هست که لذت میبره از بندگی ابلیس و از, بند... از بندگی شیطان و اونجا هست که فساد در روی زمین ایجاد می شود خداوند زمین را ایجاد نکرده خلقت نکرده آفری... نه نیافریننده نه, نه آفریده که ما بیاییم فساد بکنیم در روی زمین بیاییم بدی به بار بیاریم بیاییم ظلم بکنیم خیر زمین برای عدالت زمین برای که ما بندی خوبی باشیم، انسان خوبی باشیم، انسان متعی باشیم. این هدف از ماس خلقت ماست و ما خلقت الجنه جن و انس را خلق نکردم. جز برای عبودیت و پرستش جز اینکه خدا بندی کرده بر پرسان. و آخرودعوال الحمدلله رب العالمین و صلّى الله علی محمد و علی محمد.